مصنوی معنوی مولوی برنامه دوم خلوت طبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک گفت عشه خلوت کنخانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیز ها تا بپرسم زینکنیزک چیز ها. خانه خالی ماند و یک دیار نه. جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرم نرم گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهر جداست. وندران شهر از قرابت کیستد خیشی و پیوستگی با چیستد دست بر نبزش نهاد و یک به با یک باز می پرسید از جور فلک چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانون حد و سر سوزن همه جوید سرش ور نیابت می کند با لب ترش خار در پا شد چونین دشوار یاب خار در دل چون بود باده جواب خار در دل گر بدیدی هر خسه دست کی بودی غمان را بر کسه. کس کس زیر دم خر خار نهد خر نداند دفع آن بر می جهد برجهت وانخار محکم تر زند، آقل باید که خار برکند. خرز بهر دفع خار از سوز و درد جفته میانداخت انداخت جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد زد جا به جا می آزمود. زانکنیزک بر طریق داستان باز می پرسید. حال دوستان با حکیم او قصه ها می گفت فاش از مقام و خاجگان و شهرتاش سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت هوش تا که نبز از نام کی گردد جهان او بود مقصود جانش در جهان دوستان و شهر او را برشمرد بعد از آن شهر دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدامین شهر بودستی تو بیش نام شهر گفت و زن هم درگذشت رنگروی و نبز او دیگر نگشت خاجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک شهر شهر و خانه خانه قصه کرد نیرگش جنبید و نیرخ گشت زرد نبز او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چوکند نبز جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام است در گذر. او سر پل گفت کوی غادفر. گفت دانستم که رنجت چیست زود، در خلاست سهرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو می خورم تو غم مخور بر تو من مشفق ترم از زد پدر هانهان هان این راز را با کس مگو؟ گرچه از تو شه کند بس جست جو گورخانه راز تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغامبر که هرکی سر نه زود گردد با مراد خیش جفت. دانه چون اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود. زر و نقره گر نبودندی نهان پرورشکی یافتندی زیرکان. وعدها و لطف های آن حکیم کرد آن رنجور را آمند زبیم وعدهها باشد حقیقی دلپذیر وعدهها باشد مجازی تاسگیر وعده اهل کرم گنج روان وعده نااهل شد رنج روان در یافتن آنولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد شاه رازان آن آگاه کرد گفت تدبیران بود کان مرد را حاضر آره مسبه این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور. با زر و خلعت بده او را غرور. چون که سلطان از حکیمان را شنید پند او را از دل و جان برگذید. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند آوردن زرگر شه فرستاد آن طرف یک دو رسول حاضقان و کافیان بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو امیر پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر که لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو صفت نک فلان از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری اینک این خلعت بگیر و زر و سیم چون بیایی خاص باشی و ندیم مرد مال و خلعت بسیار دید غره شد از شهر و فرزندان برید اندر آمد شادمان در راه مرد بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. از پتازی برنشست و شاد تاخت خونبه های خیش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با سد رزا خود بپای خیش تا سوال قضا در خیالش ملک و عز و محتری گفت اسرائیل راو آره بری چون رسید از راه آن مرد غریب اندر آوردش به پیش شه طبیب سوی شاهنشا بردندش به تا بسوزد بر سر شمع تراز شاه دید او را بس تعظیم کرد مغزن زر را بدو تسلیم کرد پس حکیمش گفت که سلطان مه آن کنیزک را بدین خاجه بده تا کنیزک در وسالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن محروی را جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را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 چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد عشقهای کسپه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگ بود کاشکان هم ننگ بودی یکسری. تا نرفتی بر برویان بد داوری. خون خوندوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن تاووس آمد پر او، ای شهر را بکشته فر او. گفت من آن آهو که از ناف من ریخت این سیاد خون صاف من، ای من رو روبای صحرا کس کمین سر بریدندش برای پوستین ای منان پیله که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخان آنکه که کشتستم پی مادون من می نداند که نخسبت خون من بر من است امروز و فردا بر وی است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 آن کنیزک شد سه اشق و رنج پاک زان که مردگان پاینده نیست زان که مرده سوی ما آینده نیست اشق زنده در روان و در بسر هر دم باشد زغنچه تازه تر اشق آن زنده گزین کو باقی است کس شراب جان فضایت ساقی است. عشق آن بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگه ما را بدان شه بار نیست. با کریمان کارها دشوار نیست. بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تعامل فاسد. کشتن آن مرد بر دست حکیم، پای امید بود و نیزبین. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله آن پسر را کش خزر ببرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق آنکه از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرماید بود عین سواب آن که جان بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده تا بماند جاند خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با احد آشقان جام فرح آنگه کشند که به دست خیش خوبان شان کشند شاه آن خون اسپای شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی و نبرد تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفا غشکی هلت پالودگی بهره آن است این ریاضت وین جفا تا برارت کوره از نقره جفا بهره آن است امتحان نیکو بد تا بجوشد بر سرارت زر زبد گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی در آننده نشاه. پاک بود از شهوت و هرس و هوا، نیک کرد و لیک نیک بد نما. گر خزر در بر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خزر هست. وحم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب، تو بی پر مپر، گل سرخ است تو خونش مخان، مست عقل است و تو مجنونش مخان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. می بلرزد ارش از مدح شقی، بدگمان گردد ز متحش متقی، شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود آن کسی را کش چنین شاهی کشد سوی بخت و بهترین جاهی کشد گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق قهر جو بچه می لرزد از آن نیش هجام مادر مشفق در آن غم شاد کام نیمه جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وحمت نیاید، آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور ای بنگر تو نیک. <تصفيق> حکایت بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان، بقال و توتیه، خوشنبای سبز و گویا توتیه بردکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حازق بودی جست از سوی دکان سوی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خاجش. بر دکان بنشست فارغ خاجه دید پر روغن دکان و جام چرب. بر سرش زد گشت توتی کلز ضرب که چند سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد ریش بر میکند و می گفت ای دریخ کافتاب نعمتم شد زیر میغ دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان هدیهها می داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را بعد سه روز و سه شب حیران و زار دکان بنشسته بود نومیدوار می نمود آن مرغ را هر گون نهفت تا که باشد اندر آید او بگفت جولقی سر برهنه می گذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت در گفت توتی آن زمان بانگ بر درویش زد که ای فلان کس چه ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیازش خنده آمد خلق را کوچو خود پنداشت صاحب دلق را کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نبشتن شعر و شیر جمله عالم زیم سبب گمراه شد کمکس زبدال حق آگاه شد همسری با انبیا برداشتند اولیا را همچو خود پنداشتند گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خواب مخور این ندانستن ایشان از اما هست فرق درمیان بی منتها هر گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل هر گون آهو گیاه خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب هر دو نی خوردند از یک آب خور این یکی خالی و آن پر از شکر صد هزاران اینچونین اشباه بین فرقشان هفتاد ساله راه بین این خورد گردد پلیدی زو جدا آن خورت گردد همه نور خدا این خورت زاید همه بخل و حسد وان خورت زاید همه نور احد این زمین پاک و آن شورست و بد این فرشته پاکو آن دیوست و دد هر دو صورت گر به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را سفاست جز که صاحب زاق که بیاب او شناست آب خوش از شور آب سهر را با معجزه کرده قیاز هر دورا بر مکر پندارد اساس ساهران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا زین اصا تا آن اصا فرق است جرف زین عمل تا آن عمل راه شگرف لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله آن عمل را در وفا کافران اندر میری بوزینه تب آفت آمد درون سینه تب هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم او گمان برده که من کردم چو او فرق را که دانه دانستی زرو. این کند از و او بحر ستیز بر سر استیز رویان خاک ریز. آن منافق با موافق در نماز از پای استیزه آید نه نیاز. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات، مؤمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات اندر آخرت گرچه هر دو بر سر یک بازی اند، هر دو با هم مروزی و رازی اند. هر یکی سوی مقام خود رود. هر یکی بر وفق نام خود رود. مؤمنش خوانند، جانش خوش شود ور منافق تیز و پر آتش شود نام او محبوب از ذات وی است نام این مبغوز از آفات وی است میموواو و میمونون تشریف نیست لفظ مؤمن جسپه تعریف نیست گر منافق خانیش این نام دون همچو گژدم می خلد در اندرون گرنه این نام اشتقاق دوزخ است پس چرا در وی مذاق دوزخ است زشتی آن نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بهر از ظرف نیست حرف ظرف آمد در او معنی چو آب بحر معنی انده ام مل کتاب بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در میان چون برزخ لایب غیان وانگه این هر دو زیک زی اصل روان برگزرزین هر دو رو تا اصل آن زر قلب و ذره نیکو در عیار بی مهک هرگز ندانی زیتبار هر را در جان خدا بن حتم هر یقین را باز داند اوز شک در دهان زنده خاشا جهت آنگه آرامد که بیرون نشنهد در هزاران لقمه یک خاشاکه خورد چون درآمد حس زنده پی ببارد حس دنیا نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان صحت این حس بجویید از طبیب صحت آن حس بخواهید از حبیب صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد ویرانیش آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر، آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آب خورد پوست را بشکافت و پیکان را کشید پوست تازه بعد از آنش بردمید قلعه و ایران کرد و از کافر ستد بعد از آن بر ساختش صد برج و صد. کار بیچون را که کیفیت نهد، اینکه گفتم هم ضرورت میدهد گه چونین بنماید و گه زده این جز که حیرانی نباشد کار دین نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران و غرق و مست دوست آن یکی را روی او شد سوی دوست وان یکی را روی او خود روی اوست روی هر یک می نگر میدار پاس بوک گردی توز خدمت رو شناس چون بس ابلیس آدم روی هست پس به هر دست نشاید داد دست زان سیاد آورد بانگ سفیر سو فریبد مرغ را آن مرغ گیر بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش از هوا آید بیابد دام و نیش حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیم زنفسون کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هی بی شرمی است. شیر پشمین از برای کت کنند. بو مسیلم را لقب احمد کنند. بو مسیلم را لقب کذاب ماند. مر محمد را للباب ماند. آن شراب حق خطامش مشک ناب. بادر را ختمش بود. گندو عذاب برنامه های خانش متن کامل مصنبی معنوی مولانا را مین وقتاش و شهباز ایراج تهیه و اجرا کرده این برنامه های نیم ساعته هر سه شنبه ساعت ده و سی دقیقه شب باخت افغانستان روی موج می آید و پنج شنبه ها ده و سی دقیقه شب بازپخش پخش می شود